نخوستین عادت ضد تنبلی از قانون 820 برای تصمیم گیری استفاده کنید. بهانه ای که از میان می رود. فعلا وقتش را ندارم. ما اغلب کارهایمان را به تعویق می اندازیم زیرا احساس میکنیم بیش از حد کار بر سرمان ریخته است. به نظر من این عذر ناموجه نشانه آن است که ما توان تشخیص آنچه در کار و زندگیمان به راستی مهم است را نداریم. خوشبختانه می توانیم بر این بهانه با پیروی سرسختانه از قانون هشتاد بیس قلبه کنیم. این عصر که نخستین بار توسط ویلفرد و پارتو به جهانیان معرفی شد، می گوید که شما هشتاد درصد از نتایجتان را از 20 درصد از تلاشایتان می گیرید. بنابراین موفقیت هایی که در زندگی ما به دست می آید، تنها ناشی از بخش اندکی از فعالیت های ماست. شما می توانید این قانون را علیه تنبلی بدین ترتیب به کار ببرید که تنها بر فعالیت هایی که نتایج چشمگیری در بردارن تمرکز کنید و به دیگر فعالیت هایتان بی اعتنا باشید. استفاده از قانون 820 برای مبارزه با تنبلی شامل فرایندی با 5 قدم است قدم اول فعالیت های 820 را شناسایی کنید شناسایی آن دسته از فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر کار شما دارند ضروری است. اساساً اینها همون دلایل اولیه‌ای هستند که به خاطرشان حقوق می‌گیرید. ساده‌ترین راه اجرای قانون هشتاد 20 شناسایی کارهایی که به راستی مهمند و گذاشتن وقت بیشتر بر روی آنهاست. به عبارت دیگر، ما باید آن دسته از فعالیت‌هایی که 80 درصد از نتایج و شادمانی زندگیتان را حاصل می‌کنند پیدا کنیم. اما اگر نتوانیم آنها را بیابیم چه. روی یک ورق کاغه از کارهایی که به طور معمول در طول یک روز انجام می دهید را بنویسید. سپس به دور آنهایی که بهترین نتایج را برای شغل شما در بردارند خط بکشید. در آخر اگر رئیس یا کارفرمای دارید از او هم درباره مهمترین فعالیت های کاریتان نظر بخواهید. این قانون را برای زندگی شخصیتان نیز به کار ببرید. مشخص کنید کدام کارهایتان به راستی مهم و معنا دارند و کدام کارها را صرفاً از روی عادت انجام می دهید. گذراندن وقت با خانواده، ورزش و روابطتان با دوستان و فامیل جزء کارهای 80 درصد به حساب می آیند. زیرا اینها فعالیت هایی هستند که به زندگی شما معنا می بخشند. اما گذراندن وقت پای فیسبوک و تلویزیون و جستجوی بیهوده در اینترنت اینگونه نیست زیرا که وقت بسیار از شما میگیرند و نتیجه اندکی برایتان در بر دارند. شناسایی فعالیت‌های 80 درصد که برای شما تولید درآمد می‌کنند و به راستی به زندگیتان معنا می بخشند مهم است. اطلاعات حاصل از این شناسایی به شما در تصمیم‌گیری‌های سختی که در قدم بعدی با آن مواجه خواهید شد کمک می‌کند. قدم دوم یک سوال ساده زمان برای شما منبع لایزالی نیست به ازای هر دقیقه‌ای که صرف انجام کاری می‌کنید یک دقیقه هم از زمان زندگی شما کاسته می‌شود پس چرا باید این دقایق ارزشمند را صرف امور بی‌اهمیت کنید از این پس هرگاه با پروژه یا کار بلقوه‌ای مواجه شدید از خودتان این سوال ساده را بپرسید آیا این کار به سود یا زیان فعالیت های 80 درصد من است؟ معمولا ما کارهایمان را از بیم آنکه کسی را از خود ناامید نکنیم یا در نظر او بد جلوه نکنیم انجام می دهیم. به هر حال هیچ اشکالی ندارد که دریابید چه کاری به راستی برای زندگی شما مهم است اگر دیدید انجام کاری وقتی که برای فعالیت های 80 درصد تان کنار گذاشته اید را می گیرد، به هر قیمتی که شده از انجام آن خود داری کنید. به یاد داشته باشید که هرگز نگذارید اولویت‌های سایر مردم تبدیل به اولویت‌های زندگی شما شوند. البته اگر رئیس یا کار داشته باشید، نگفتن به او کار آسانی نیست. یک راه حل برای این کار آن است که برای او توضیح دهید که به فعالیت هایی اصلی که بیشترین سود و ارزش را دارند را شناسایی کرده اید و لازم است که وقتتان را صرف این فعالیت ها بکنید. برای او شرح دهید که گذاشتن زمان بیشتر بر روی این فعالیت ها به معنای افزایش بهرهوری و راندمان کاری شماست. خواهید دید که اغلب کارفرمایان با دانستن این که شما چگونه می توانید کارتان را بهتر انجام دهید تا آنها نتیجه بهتری بگیرند به آسانی قانع می شوند. قدم سوم هزف یا تفیز اگر در یافتن زمان برای انجام پروژه جدیدی مشکل دارید، لازم است دوباره نگاهی به برنامه کارهای روزانهتان بیاندازید. احتمال آن بسیار است که در این برنامه کارهایی وجود دارد که شما را از فعالیتهای 80 درصدتان دور می کند. اینها همان کارهایی هستند که یا باید هزف شوند و یا به شخص دیگری تفیز شوند. فهرست پروژه‌های شما نباید انباشته از مواردی باشد که انجامشان اهمیت چندانی ندارد. اگر فعالیتی هست که نه به شما رضایت خاطر می‌دهد و نه نتیجه خوبی در بردارد، دارد، لازم است که خودتان را از شر آن خلاص کنید. بدین ترتیب که یا انجام آن را به شخص دیگری واگذار کنید و یا اینکه اصلاً آن را از فهرست فعالیت‌هایتان حذف کنید. این کار هم ممکن است به بحثی طولانی و رئیستان منجر شود. به سادگی برای او توضیح دهید که لازم است بر روی فعالیت های مهمتر تمرکز کنید و از او بخواهید انجام این کارها را به شخص دیگری بسپارد. قدم چهارم اضافه نکنید، جایگزین کنید. وقتی پروژک جدیدی را آغاز می کنید، در برابر تمایلتان برای اضافه کردن آن به انبوه فعالیت‌هایی که باید انجام شوند، مقاومت کنید. این کار تنها به احساس استیصال شما خواهد انجامید که از دلایل اصلی به تعویق انداختن کار کارهاست. به جای این کار بهتر است که این پروژه جدید را جایگزین پروژه دیگری که نتایج چندانی در بر ندارد کنید. به یاد داشته باشید که زمان شما محدود است. اگر احساس می کنید که پروژه جدیدتان به قدر کافی مهم هست که بر روی آن کار کنید، آنگاه این پروژه باید جای فعالیت کم ارزشتر دیگری را بگیرد. بدین طریق است که می بدون آنکه زیر آوار کارهای وقت گیر دفن شوید، بر روی فعالیتهای 80 درصدتان متمرکز باقی بمانید. قدم پنجم تمرین خلاقانه درست است که این کتاب برای مبارزه با تنبلی نوشته شده است اما گاهی اشکالی ندارد که به طریق استراتژیک فعالیتی را به آینده موکول کنید وقتی دریافتید که پروژه‌ای جزء فعالیتهای 80 درصد به حساب نمی‌آید بهتر است که آن را به لیست کارهایی که یک روز بعد از ظهر در آینده انجام می‌دهید اضافه کنید شما این کار را با علم به این موضوع به تأخیر می اندازید که تنها در صورتی آن را انجام خواهید داد که بعدها در زندگیتان جایگاه مهمتری پیدا کند. رمز موفقیت در تعویق خلاقانه آن است که به مرور فهرست کارهای یک روز بعد از ظهرتان را به یک عادت تبدیل کنید. پیشنهاد من این است که ماهانه این فهرست را مرور کنید. تا پیگیر اهدافتان باشید و مشخص کنید که آیا برای پروژه جدید زمان کافی دارید یا خیر بعدها به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت البته لازم نیست که اساس فعالیتتان را بر این نگرش استوار کنید ولی بد نیست که آن را در گوشه ای از ذهن خود نگاه دارید اجرای این عادت مهارت 80 برای پرورش و نهادین شدن در ذهن شما به زمان نیاز دارد در آغاز سخت است که دست از پروژه هایی که روزی فکر می کردید مهم هستند بکشید. اما بالاخره به این بصیرت دست می که بدانید کدام کار ارزشمند و کدام کار تنها طلب کردن وقت است. برای شروع انجام این کارها را پیشنهاد می کنم. 1. به صورت ماهانه بر روی برنامه روزانه فعالیت فعالیتهایتان مروری داشته باشید. 2. فعالیت های هشتاد درصد که بهترین نتایج را تولید می کنند را مشخص کنید سه فعالیت های بیست درصد را یا حسب کنید و یا انجامشان را به شخص دیگری واگذار کنید چهار هر بار که با پروژه جدیدی مواجه می‌شوید، از خودتان بپرسید که آیا انجام این پروژه به سود یا زیان فعالیت های هشتاد من است؟ پنج اگر این پروژه به انجامش میارزید آن را جایگزین پروژه کم اهمیت تری کنید. آن را به انبوه کارهایی که باید انجام دهید اضافه نکنید. 6. تمرین تعویق خلاقانه را بر روی فعالیت که اهمیت چندانی ندارند انجام دهید. به زودی در میابید که مبارزه با تنبلی از طریق تمرکز بر روی فعالیت‌هایی که بیشترین بازگشت را برای سرمایهگذاری زمانی شما دارند چقدر آسان است. قانون بیست را در زندگیتان به گیرید تا هرگز در اثر انباشتگی انبوه کارها دچار احساس استیصال نشوید و استراب فهرست طولانی کارهایی که باید انجام شوند را هم نداشته باشید در عوض همه اینها به صورتی پویا به مهمترین کارهای زندگیتان بپردازید